سلام عزیزان و خدمت شما دانشگان عزیز، من شریفی هستم. به این قسمت هست از پادکست هوگمان خوش آمدید. در این قسمت درخصوص مراجع رستیگی به اختلافات صورت می‌کند. بر اساس سیل نو اختلاف و طرفین اختلاف قانون مراجع مختلفی رو در نظر گرفته است. بمانم مثال و در شرایط فیلی بر رستیگی ب اختلاف بین زوج و زوجه دادگاهی بماند دادگاه خانواده بین اختلافات رستیگی می‌کند. برای رستیگی ب اختلافاتی فیما بین کارگر و کارفرما که مشمول و قانون کار هستن مراجعی به نام های حیط تشخیص و حیط حل اختلاف به این اختلافات رسیدگی می کنن برای اختلافات بین مردم و دولت مراجعی به نام دیوان ادالت اداری به این اختلافات رسیدگی می کنن پس منو بر این با توجه به نوع اختلاف و طرف این اختلاف، مرجعی که قانون تعین کرده است، مرجعی صالح برای رستیگ به این اختلافات است. آیا ما با امونه اشخاص عادی میتوانیم در این خصوص ورودی داشته باشیم با سقطن منفی است. تنها کافی است که بدانیم مراجعه مختلفی وجود دارد و در زمانی که اختلاف ما ایجاد میشود، در اون موقع است که باید به ایک متخصص حقوقی مراجعه کنیم و او به ما راه نمایی خواهد کرده. که این اختلافی را که داریم به کجا باید ببریم و کدام مرجع صالح بررسیگی به این اختلاف است؟